بازنگری در تاریخ قلم رو بمیانیم حوشنگ شهریاری که آرزوی بزرگترین شهریار شدن داره یادم پاچه هستی میخواد جاه تلبی جاه یعنی خصوصیت فردی یه فهمان باز جمشید خوبرمه خوبرمه صفت داره و هم میتونه استورایی باشه در پای کوه حکره گشته اون تلافات شد آرزوی بزرگترین شهریار شدن رو داره, داره. عجیده ها استورایی شده سپوزه ی سکلیه ی شش چشم. این انقدر منفور بوده، هر چی بوده که اصلا این دیگه الان این انسان، این انسان دیگه نیست اینجا. ولی جانشینش فریدوم. کسی که عجیب را میره نیایشون عجیب دهکرا را لازم میکنه و دو دختر را آزاد می‌کنه. که ما برای شاه نوازار در شاهمانش داریم، نبی سید سخته گرشاس به نریمان این دیگه پاتریسی پهلوانه. در کرانه درایشی پیشینگه که این در بندشم بسمه مختمت هست. پیروزی بگ گندرو در کرانه دریای پرخیزا به فراخ کرد. بعد نظریه توران بسیار قاطع کرد که بپذیرن که واقعا توران وجود داشته. ثابت شد که این نشا نشا زرد نیست. چرا؟ چون بعد مثلا بعد در دیگر زبان‌های نشا زرد می بود. مثلا ما میگیم روشی در سامی است مثلا در اکدی هست تا میره مثلا تا آفریقا مثلا هنوز ما ریشه اش پیدا میکنیم. پس نمیتونه هم همجواری بوده باشه. والداتی باشه. پس ریشه کهن مشترکه. در یچی هامون کنگدش تو ایرانویج در مرز خراسان کنگدش در کنار هاموند در ایرانویج واقع شده. ایرانویج وارث خونیرسه. خونیرس به تنهایی اندازه شش کشور. خونیرس یه شهرستان نیست. یه جایی نیست که ولش کنم برن جای دیگه. ایرانویج ناحیه خیلی گسترده ایه. نمیدونم الان شما میتونین بگین کنگدش کنار هامون نیست. میتونین بگین نیست توی ایرانویج. میشه با این اسناد رو با چی میخواین رد کنید خیلی؟ به نام ایزد یکتا با عرض سلام و و احترام خدمت هممیهنان گرامی همراهان صدای امید به ویژه علاقمندان برنامه ایران ویج خوشبختانه قسمت 28 رو در خدمت شما هستیم خوشبختانه این ارز می کنم که این جمع و این دوستانی که ما داریم این گروهی که ما داریم خوشبختانه داره بحث ها رو به صورت علمی ادامه میده و این گروه دوام داره پیدا میکنه و امیدواریم که بحث ها رو ادامه بدیم و اونطوری که من دارم ارزیابی می کنم از بحث هنوز فکر کنم تا 20 قسمت هم نمیتونیم به دوره کیومرز هنوز برسیم چون هنوز داریم تو سرکله همدیگه میزنیم هیچ ارادی هم نداره و از لحاظ علمی نظریات علوم انسانی باید به چالش کشیده بشه و با ایار علوم مختلف و در واقع فیلترهای مختلف سنجیده بشه و بعد ارائه بشه به شنونده در قسمت گذشته جناب آقای ایران مهر گنامی به بحث اهریمن پرداختن و اینکه که احریمن بحث اپاختر هستش اتفاقا من توی فرهنگ فولکلور منطقه خودمون یک مثالی بزم چون در قسمت گذشتم یه مثالی زدم مثلا جناب آقای کریمی در برده بحث خشت مطرح کردن گفتم که به خشت و کلم به آجر هم ما میگیم کرپیش یعنی پیش از پیشیرمه که های ما میدونن یعنی پختن وقتی مثلا یه غذا رو میپشن میگن فلان غذا رو مثلا فلان غذا رو پیشirdi مثلا اینم از اون میاد و مشخص هستش که انسان هایی که در واقع با آفتاب و اینها آشنا هستن این رو ساختند در مورد مسئله هم جناب آقای ایران مه فرمودن اتفاقا توی فرهنگ فولکلور مردم ما مثلا روز خوش رو میگن مثلا میگم که اصطلاحی دارن شش من بجون görmedim مثلا این خیلی من در این مورد تحقیق کردم که معمولا بهشت و اون حالا خوشی برای اینا اینه که روش جون یعنی خورشید یعنی خورشید حالا این احتمالا از کجا این احتمالی که در واقع تو تحقیقاتی که من توی چیزای محلی انجام دادم اینه که این دقیقا اتفاقا چرا تو ذهن اون ناخداگاه این ملت ها باقی مونده که اینها احتمالا یک سرمایه بسیار شدیدی رو میدون دیدن یک زمحریر بسیار طولانی رو اینا تجربه کردند نسل ها این زمحریر رو تجربه کردند و بعد بعد از چندین نسل خورشید رو دیدن بعد این خورشید براشون شده یک کبه آمال و این توی ذهنشون مونده و هنوز هم وقتی که مثلا در فقر و بدبختی و فلاکت میمونن مثلا دنبال این هستن که میگن بی جون جونم. یعنی یه روز خوش ببینم یعنی منظور خورشید رو ببینم خورشید برای اینها نماد یک روز خوب نماد یک زندگی خوب و حتی نماد یک حالت بهشت رو پیدا کرده اتفاقا میشه از این های مناطق مختلف استفاده کرد برای رهگیری اندیشه ها و اسطوره های مختلف و تحلیل اونها و تحلیل خصوصا هرمنوتیکی که میتونه کمک بکنه حالا خود بنده تا به حال توی بحث ها به اون شکل شرکت نکردم ولی با این گرمایی که توی بحث هستش منم هوس کردم که از بحث هفته آینده از نشست آینده وارد بحث ها بشم با اجازه دوستان و همیهنان هم گرامی و ببینیم که به کجا میرسیم چون باید این بحثا به یک نقطه مشترک حالا لازم نیست که حتما ما بحثمون همه صد در صد به یک نقطه برسیم چون ما توی علوم انسانی صد در صد نداریم اگه صد در صد باشه کسیم باید ببندیم بحث رو و هرکدی دیگه دنبال تحقیق و علم و پژوهش رو اینها نریم چون علم و پژوهش با سوال شروع میشه سوال با چی شروع میشه سوال هم با شک شروع میشه یعنی ما این شکاکیت هستش که ما رو به انباشت علم و انباشت داده ها میرسونه چون تو شما تو علم شک نکنی و به یک یقین مطلق برسید که اصلا دنبال تحقیق و پژوهش نمیریم مطالعه و تحقیق و پژوهش با سوال و شک و شکاکیت شروع میشه در این قصه باز هم از شراب آقای کریمی شروع می کنیم بحث های خودشون رو ایشون هنوزم ادامه دادم چون تو نشست قبلی دو تا سوال حاشیه‌ای بنده مطرح کردم هنوز بحث خودشون رو در مورد شمال شرقی بودن ایران ویج. ادامه ندادن در این قسمت در خدمت ایشون هستیم تا اینکه باز هم ادامه استدلال هایی ایشون بر اساس اسناد مختلف رو که ایرانویج ایران ایرانویج در فرارود و سغد و خراسان بزرگ هستش رو از ایشون بشنم. جناب آقای کریمی در خدمت شما هستیم. به نام خدا و با درود فراوان خدمت اعیانان گرامی امیدوارم هرج کسان تندرست باشن. در برنامه پیشونی در اهریمن فرمودن دوستان دوستای ایران مهر خب ما جلسه دوم یا سوم بود که گفتیم که زبان شناسی بدون معنی شناسی یعنی سفر و خدمتتون عرض کردیم که زبان هندو اروپایی حدودا تو ده هزار سال تونستن اینا رو به عقب برگردن و اینا رو بازسازی بکنن این که ما میگیم احریمن همون اول اصلا به هیچ روی به این شکلی که اموزه هست نبوده این حرف ما نیست این ریشه علیشه انق اوستایی به معنای خم کردن انگ اوستایی معنی خم کردن بله همین یعنی شما در واجه انگشت دارید درست. انگ یعنی خم شدن اوشت علیشه اوس یعنی استخوانه که الان شما می‌بینید در مازندران درست شده یعنی انگشت مثلا این واژه انگ زدن ممکنه از این فرمو بفهمون واژه انگل اروپایی به معنای زاویه از است. یعنی خم شده زاویه پیدا درست و کاملا برعکس سفته‌بازی می‌دونه البته در عین اینکه فرضاشو می‌فهمونین اینو قبول دارید که فقط و فقط با زبان‌شناسی نمی‌شه بلکه علوم دیگر رو هم باید دخیل اینجا، بدیم چون در دار... تحلیل پدید چون پدیده اهریمن خیلی مهمه اتفاقا اینجا تنها چیزی که با اون کاراک می‌کنه همین زبان‌شناسیه هیچ چیز زبان‌شناسی دیگه هیچ با... چیزی نداریم احتیاج ما در معناشناسیه اینکه این واژه اول چی بوده هیچ چیزی جز براندازه خود زبان‌شناسی و معناشناسی نمی‌تونه کار کنه مع شناسی که از سختترین قسمت های زبانشناسیه من برای همین هم توصیه کردم که بچه که ها شرکت کنند سخننا به جلسه اول گفتیم که ما همه حرف های اروپا یا نمیگیم دروغه یا اشتباهه به هیچ روی بسیاری از این دانشگاه ما وامدار اونایی فقط افتاد دست یه استعمارگر و اونها به سود خودشون اینا مصادره کردند نسبت به خود دانشش که ما شکی نداریم که میگیم این دانش اینا پیدا کردن دستشون درد نکنه حالا ما میخوایم خودمون ازش استفاده بکنیم با وسیله خودمون نه اینکه بگیم دانشمون همه اشتباه بوده از اول تا آخر اصلا هم چیزی نیست. البته مطلقا ما نمی‌تونیم بگیم 100 درصد اونا که میگن. به هیچ روی هم چیزی نیست. ببینید واژه اهریمن این ریشهش تا تو ایسلندی باستان هم پیگیری شده. خب بس پس اه... اصلا انگرامینو در ریشه هندو اروپایی ما زبان در ادیان شش هندو اروپایی چیزی به نام شیطان به این شکلی که ما در ادیان سامی می‌بینیم که بعدها به خاطر برخوردی که ما با سامیا داشتیم به این شکل در اومد اهریمن و همین وجهی به خودش گرفت نبوده. به هیچ روی یعنی چیز خوبی بوده؟ نه یعنی دلپذیریه؟ دلپذیر نیست ولی لازمه زندگیه ببینید لازمه زندگیه مثلا یعنی مثلا ما بلید تو دوزخ زندگی کنیم جای خوبیه؟ نه ازه بدید اصلا همچیزی نیست مطناعی مینوی خرد و چطوری میخواد با حوثایی یک سام بکنید من یه مثال ساده به شما میزنمشه ریشه... نو یعنی چی؟ الان خدمتون عرض میکنم یه ریشه داریم ما مثلا در زبان های آریایی به نام که که میگن هنندروپایی به نام سیکر به معنی بریدن ما فقط در خود انگلیسی فقط دارم میگم حالا تمام زبان سوئدی و بلغاری اویت اما همینو بماند فقط در خود انگلیسی ما واجل شرت معنی لباس روعدش درورددیم واجل شیر عدش در بردیم شرات حتی شروط به معنی زیرک و باهوش برنگ سو... تو انگلیسی یعنی چی؟ اجازه بدید. حتا تا چیز حتا تو ساحل اینقدر معناشناسی اهمیت داره که اگر ما معناشناسی رو نمی‌دونستیم که نمی‌تونستیم این اینا رو پیدا بکنیم خب حالا بگردیم بریم دکتر تو انگلیسی هستی تحلیل هم انگار تو انگلیسی هستی انگار این اسپانیایی یعنی خش. یعنی شاید چیز خوبی دیگه ببینید میگم ایزو نمی‌د دیگه اد... بمید... من برداشت کردم ریشه ای من فکر کنم تو من برداشت کردم صحبت ایشون این بود که مثلا اون انگار معینوی گاتایی خب اون هویت و شخصیت و هر چیزی که صفاتی که داره خیلی متفاوتتر هست از اون اهریمن پهلوی ولی اون که طبیعیه اصلا هر واژه‌ای در اون چیز شما دو جدا که نیست که شما نمیتونید بیاید معنی اوستایی که به داد اینا میگن شما, شما جای چون میدونن جده... آپاختر جایگاه اهریمنه و ایران بچم در آپاختر حالا میخوان اهریمنو بگن یه چیز گلبال و بلبل و خوشگلیه حالا خیلی هم اشکال نداره اصلا هم چیزی نیست اصلا هم چیزی نیست اتفاق ما داریم میگیم آپاختر جای اول نبوده اون سرمایه باعث شده که از دیده اونها بهش اونجا جایگاه وقت تفسیر متأخر هست. یعنی تفسیر متأخره. اصلا اپاخترم یعنی اپ که یعنی دوره بچا میتونن من تو واژه‌نامه کنت برای فارسی باسن کنن. در تماز زبان‌های هندورپایی هستش. همه، حالا همه نگیم تو بسیاریش هستش ببین جو در لاتین اپا یه یعنی چیز دور اخترم که اون اخترم یعنی ستاره است. اپ اختر معنی اپا اختره اون دو تا که که نرم گرمی صدا کشیده آ شده شده اپاختر یعنی ستاره قطبی اینا اصلا همه چون میشناختن اونجا زندگی میکردن اصلا ما چیزی که داریم حالا ماا بعدا میاریم برای این کار این استرلابی که داشتن که از وری ها بیرون استناد میکنه مشخص اونو در چه ذاویه دیدی داشتن که میتونست استرلاب رو بسال. خب حالا به همین بحث به کنار خب این بحث اهریمن رو یه واژه شناسی به قول فکو یک تبار شناسی بکنید بیایید پایین بید واژه شناسی اینور ریش شناسی ریش شناسی و اتوللوژی این جور واژه بدون معنی شناسی به بیررا هست معنی شناسی ثابت کرده ویژه ما تا ایسلندی باستان هم این ریشه رو رفتیم پیدا کردیم یعنی ما نه پیدا شده پیدا شکرنی بزرگترین زمان شناس جهان بود این کار کرده ثابت شده حتی تو زبان هم به این معنی شکلی نبوده فهمیدن که در زبان هند اروپایی اولیه کشم آریایی نخستین که اینا باش مین پر تا اینت اروپیا این ریشه به هیچ عنوان به این معنی نبوده به چه معنی بوده؟ به منی خم کردن و آسیب رسند حتی رویش اکه حتی رای دور بریم خود رویش اکه در عوضه هی به عنیه بیمارد گرفته اومده پایین درسته به عنیه آسیب رسندن, آسیب رسندن. آسیب رسندن. حتی ما قلاب... قلاب ماهیگیری داریم اکه به عنیه خم کردن در زمان عوضه هی اومده به قلاب ماهیگیری خب بلی. حالا بعد الان میگید موضوعتون چیز خوبیه نه چیز خوبی نیست خب از چی الان نمیدونم میگیم اصلا اون دیدی که شما اهریمن در پهلوی دارید و میخواد اونجوری قبل بعد جلوه بدید که مثلا جای خیلی بوده. جای بدی هم نبوده اصلا ببینید اونجا جای بسیار خوب و خوشاوا و هوایی بوده ها دوزخ جای خوشاوا نبدید جای بسیار خوش هوایی بوده کجا؟ بعدها به خاطر جا میانه که ما داریم نه نه شما دستای شمال سغدو بگین قزاقستان ما... بگین آسیای من... میانه جای دیگه است. آسیای میانه بالای شما من دارم شماله تاجیکستان فعلیو دارم. بگن. شما ایران میگید شماله... ایرانویج شمال سغده. نمی تونین جاشو تغییر بدین من که. کجا گفتم شما؟ کجا واد میانه؟ من آقا اینو میسم تو جنوب. از ایرانویج آمدن سغد. شما از ایرانویج وقتی بیاین سغد یعنی وقتی که بخواید از سغد به ایرانویج برات بدین شمال سغد. اصلا من هیچ چیز نیست واضحی که. اصلا میشه شمال غرب میشه بشرف جنوب به هم میشه همه جا میشه تو برنامه قبلا هم گفتن که میارن کتاب اصلا روبرومه اصلا میشه این ایراویزو مختصات جغرافییشو به ما بگین یه کجاست که دیگه این افتاد تا شمال خوار... از شمال تاجیکستان شروع میشه تو یه مقداری تو سمت ازبکستان و حتی تو سمت تاخارستان یعنی... میره یعنی الان به من بگین سغت بلق ری اینا جزو ایرانویج نیستند دیگه اینا تو ایراویز نیستن برای ایران ایرانویز نیست ری شهر ایران نیست خیلی خوب شما اینو تا اینجا در بس این نظر نظرشون گفتن هم... پس تو ایرانویز نیستی دیگه ایران فقط زن یک کلام بگین بگی. تو ایرانویز هست یا نیست شما میخواد اینجوری چیز با من دارم میگم ایران هم, هم, هم, هم, هم هست هم نیست هم هست این رو دیگه توضیح چی داریم میگیم میگیم آقا اگر دوستان به ما اعتماد دارن من وقتی دوستان مینم بهن اعتماد ندارم خب من چه دارم نه پرسش تو هست یا نیست پرسش که شما به اینجا داریم میگیم ببینید آقا من دارم چی دارم یک ساعته دارم میگم میگم آقا اسم شهرها الان ما از شمال خراسان داریم تو بالای شمال چیز گسترش پیدا کرده تو شمال میان رودان گسترش پیدا کرده آه. بعد مگه میشه بیایم بگیم بابا ایرانوچ گسترده شده ی اینه بابا معنیش ازن تضمین میدادن یعنی منظورشون اینه ایرانوچشون ایرانوچ اولیه ایرانوچ اولیه. ایران اولیه, ایران اولیه. اولیه که در و و کرده یعنی؟ اجازه بدید نامش بالا گسترش پیدا کرده یعنی ایران ویج ایران ویژه من درم تاکید می میکنم ایران ویج آمده در وندیداد و در مهیشت شمال شرق ایرانه و هرگز و هرگز و هرگز در مهیشت نیست حالا واسه این در باری وندیداد خانم دکتر بیان صحبت هرگز و هرگز و هرگز, و هرگز فلات ایران اون موقع ایران وچ نبوده است. ما میگیم که ستونهای بگید که گسترش دارن اسناد. که برای ما خیلی جالب خب من الان من دوستان میگم میگم خب برای دوستان بچه رادیای دوست داشته باشن اگر ببینن تماس میگیرن خب ما یه مناظره رو در رو با شهروندگان داشته باشیم توی هر جایی که دوستان دوست داشته باشن اونجا انجام بدین چون برنامه رادیایی جایگاهش نیست. من خودم حوسن رو نشون بدم بگم چون وقتش نمیشه. بعد خدمت شما عرض که باید ما حریف و هر دفعه شما دست کم بگیرید شکست خواهید خورد ما نتفک کنیم مذرد میخوام مذرد میخوام مذرد میخوام احمق بودن که کسا تا حالا ممنونی خیرات تا حالا نخونده و کس مثلا بندش چند صف است مثلا بگیم مثلا کس قولی مثل آقای نه با سندی که چون همه میگن درسته با من بحث نکنه آی کلمی چون همه میگن درسته مال دربستانه شون شما سرداتونو بخونید اون الکی نیست سنداتونو بگین خب شما کنگش کنار آقای دو... تو مینوی خیلی آدم از همون خوندن میفیتونید بند چنجش بازیو دایتی بازی من هنوز از شما نشینم که ایران ویج کجاست آقا ایران ویج داره به چه زبونی به اوستات بگه کدام ای کجا؟ هم میریشت اومده هم و وریشت الان من میخونم خوش هم اما دیگه کجا دیگه کجا میخواد چند چه دیگه باشه دیگه یکم فرده یکون وندیدار خانم دکتر میان پاسختونو میدن که دیگه اصلا بسته بشه من که اصلا بسته نمیشه من توضیح میدم ما که خدا بخوام دکتر بشی از خانم دکتر همون شیشه من من دیوامو خیلی راحتام میتونم صحبت کنم جناب آقای کریمی بر اساس سندی مهیشت و سند فرگردی یکم وندی داد از کنی ایشون و از دیده شما ایک ایک کتاب از دیده ده. خیلی از اندیشمندار رو دیگه ایش کالا دارد این یک کتابی من خدمتش رو شامنگاه محرفی میکنم به نام انسان نوشته یوزف رایش هولف ببسته. این آقا تو انسانشناسی اصلا مکتب داره تو آلمان دوستان میتونن برن مال اصرای اخوانناکی و اون مناطقی که ما اصرا ما ما میگیم آسیا میانه روی 126 مگه یخبندان آمریکای شمالی رو پوشش نداده بود حالا اجزای اروپا رو پوشش نداده بود؟ دوستان میام میخوام مگه قفقاز رو پوشش نداده بود؟ دوستان میام مگه شمال چین رو پوشش نداده میام خودشون مطالب اصلا هیچکون از روش صورت نداری عجب حرفیه آیفیروز یخبندان در کره زمین مگه فقط یه جا میاد یعنی فقط تو دوران بوده اون شما چون علو دلت نمیخواد بگی نگو اما خب پوشش آ آیه... هست... کریمی ببینید بندان <تصفح> در کل <كله> <تصفح> کری زمین رخ داده اینو شنهندان میشتمن آقا به ما میخندن خب بمی... نمیز دیگه بذار ببین من که گفتم شنهبندان اگر دوست داشته باشن زنگ بزنن تماس بگیرن ایمیل هر طور که میتونن بگن آقا دوباره مناظره کنید رو در رو شما یک کلام به من بگو یا نه فقط در میانه رو ده؟ نه بگو دیگه من دارم میگم پوشش یخی ده پوشش ده یخی که 10 ماه توش تابستون بوده و دوماش ماه و اون پوشش ماشت ماشت یخی که همه 12 ماه زمستون, زمستون, زمستون من. اگر شما میخواد می‌تونید به بگید که آقا کتابش رو عوض کنه این ما کتاب 2014 صفحه فقط تو بوده که آره بهتر عوض 126 حتی جریان های باد های شمالی توضیح داده حتی هوای شماسیش هم گفته یعنی تا... مثلا شما می که چون اینجا اومده بقیه جه ها ممکن نیست به این شکل باشه نقشه ناساش هم خواستیم به اتون هفته بعد میارم من به آقای دویتر هستند دوست دادمش روی سی ساعت هم دقیقا اون نقشه میشه فقط با هموبین رو میدین میشه برای ما توضیح بدین این نقشه چیزی رو ثابت نمیکنه چه چیزی رو کرده شما شما دقیقاً میفردا دقیقا با این چی میخوایم بگیم میگین که مثلا عصر یخ که در واقع میخواد بگی که 10 ماه تو زمستان بوده دو ماه تابستان فقط میتونه اینجا باشه به این شکلی که اومده بله کدوم جای دیگه بدین چی دیگه تمام جایی که اومد به شما اینجا قشنگ کشیده گفته وسیله خط شینه زمین های خشک و مواد جای پوششی یخی رو به صورت نقطه چین مسیر مهاجراتا کشیده همه رو براتون کشیده درسته بیا من خودم نمیده. الان ایرانوجی که شما میگین اینجا کجا هستش اینیاست ش... این قسمت این خوش... شمال شرق اینم فلات ایران چه خصوصیتی داره که بقیه جاها نداره اینو شما میتونید نقشه آنلاینا کنید نقشاش اصلا دوستان شما دو اینترنت بزنن تو اینترنت هست شما اینجا باید تو برنامه توضیح بدین برای ما این توضیح من چجوری بتونم شکل توضیح بدم با توانیشو داشته باشه خب من به شما میگم که من هفت پیش خوندم اصلا که گفتم که آقا کتاب زمین شناسی قاهیم گذاشت اصلا نیازی نیست شما اینترنت بزن کاملا مشخصه پر اصلا اون چیزی که داره میگه و اونجا اتفاق افتاده اون عرض جغرافی 39 درجه بالا بوده بعد خدمت شما عرض کردم که من کتاب خانم روزوایلر داره خوندیم اینجا جرالد همزه اون چی بوده؟ این چیزی که اتفاقی گفت اتفاق؟ در بالا 39 در عرض, ج... عرض بالا بوده یعنی یعنی لایه‌های یخی بلنه گرفته بلنه. با با یا سرد دا... یعنی جای دیگه نشده سرد شده. نه, خوب. خوب. شده نه این شکلی نه یعنی چیزی که آوا اصلا به ایران شما چه ربطی داره چجوری میتونین اثبات کنین میخوام ببینم اینی که داریم میگین به اینکه ایران در چه ربطی داره ربطشو به ما بگین رپتش همونه که داره میگه که ایران بش اونجایی بود که بعدا سرما اومد همه جا سرد زمان اون با اسبان سرما... هم سردوده بندر عباس سرما... هم سردوده بوده یخبنده یخبندان جز... بوده کره زمین میانگینه دماش م... شیش و نیم درجه از الان میانگینه باید... دماش پایین تر بوده همه اینا همه میشه بهش میگن مخلتکاری ای حالا ما... دیگه سند هواشناسی میگیم میشین مخلتکاری ها من دارم میگم آقا این بزرگترین انسان شناست جهان شما استدلال اگه... خودتو بگو شما یه چیزی ازون میخونی از بعد میگی اینو زندیداد چه میشناسه عزیز من اصلا این بهندیداد کو اینا نشه این, این, این بهندیداد چیکار داره این داره میگه آقا این قسمتایی که اصل یخوانا اتفاق افتاده که توش ده ماز مسون بوده این همه شما فکر میکنید چه خبره اینا کجا میتونه است امکان داشته باشه نه بالاتر هم بوده حتی به خاطر چی گفتن سیبری مبینید یکی از اشکالاتی که پیدا کردم اینا گفتن جنوب سیبری اومدن چیز کردن چرا, چرا این میانه رو نگفته بودن چرا یا،, یا اینجا یا سیبری این چند هزار کیلومتر راهه چرا اینجا رو نگفته بودن به خاطر ای که گفته گفتم یعنی این پوشش یخی که به این شکل توضیح داده شده در اینجا اتفاق نیفتاده. و گند چوره آسیای میانه روی بی... پوشش یخی, یخی رو کلا یخ روی کل 12 ماه سمستانه چند شما باید بیرون از پوشش یخی رو توضیح بدید اصلا همچین چیزی نیست چند هزار کیلو فقط دکتر مهدی بهتون بگم که در اشکوبای پایینی ور آب روان وجود داشته بعد بهتون بگم که حالا بریم بعدن نشسای یخی درو اصلا چیزی خدمت شما ارزشش نداشت ما گفتیم که آقا بیایم از دانشمندان استفاده کنیم من که نمیتونم برم یقه دانشمند زمی رو بگیرم میگم شاور شاور اشتباه شد شما سندونو میخونیم و تا نذید دلها خودتو میگیرید خود شما سنده شما دارید سر کی میگم ما میگیم تو آسیمیانی یعنی نشده نشوده شما, شما ده که ده ثابت کنید تو اسیمی یعنی احبند شده, ازنان ازن... شده. ازن... من که به شما خدمت شما عرض کردم که اینو من اینجا دارم میگم اگر دوستان دوست داشتن چیز بکنن من در هستم توی مناظره رو در رو باشه که هم اونجا بشه تخته باشه نقشه رو بکشیم کتابا رو بیاریم همه ببینن اونجا چاشنا ببینید از ایرادهایی که برنامه رادیو اینه که اینه که نمیشه واقعا تصویر زبان شناسی دریایی دار... از بله مشخصه اون بخدا دوستان نشنیدن مثلا بچه‌های امروزی من هرچی از شما ش میگم چون ندیده نشیده متوجه نمیشه برای نزدیک ببینه اینا رو این عجب جهان بزرگیه چقدر طرفدار داره وقت میگه بله. اونا هم همچین گیج نبودن مشکل که ببینید این ببینید زبان های هندو اروپایی از اینجا شاخه شاخه شده مشکل, مشکل نداره شما بر اساس مطالعاتو در واقع پژوهش‌های خودتون به یه نتیجه رسیدید بلده. ولی اگه کسی به با مطالعه و پژوهش یک نتیجه غیر نتیجه شما رسید رسید باشه نباید اون شخص رو هم متهم بکنید من متهم نکردم من دارم سند رو میخونم سندی که من دارم میخونم ایراد از اون سند دارم میگیرم میگم ببینید آقا این قرارداد ما چی گفتیم گفتیم آقا این سرمایه که داره میگه من حس عقیده‌ام باورم بر اینه که این اصلی یخ بوده و اصلی یخ تمام هم تمام مکتب‌های زمین‌شناسیات مو ورژنی نوشکه هم صحبت کردیم با اصولش ما قول دادیم که بعد نوشکه واجد بشه چون آنها توابسونه ما موان پستش آن بسث. ما تاکید می‌کنیم. ولی همانوز همانوز رو... هم هنوز هم هنوز یک دهمی بحث رو هنوز انجام نداده با این تاریب بله است که شما کردید ما فکر می‌کنیم یه ده بیست قسمت هم باید اصلا در مورد همین مسئله بحث بکنیم. اشکالی هم نداری، یه چیزی اونی هم نداری. چنابغ آقای فیروز شما ظاهرا مخالف هستید که اصلا مال انگلیس، مال اصلی یخمدان باشه اصلا و از یه جهت هم باقای ایران مهر مخالف هستید که اینجا غیر از اینجا در واقع با نظر ایشون شما مخالف هستید نظر خودتون حالا تبیین بفرمایید رش عزیز ببینید الان چند تا بحث پیشون واسه من بس بس خودم دیگه هم رفت طبع... یادی نداره اتفاق خوب شد یارتون رفت چون که اون برنامه <تصفح> اون بحثان بالا چهل 40 قسمت دیگه حالا شما ببینید... عجله یه موضوع این که ببینید در عصر یخبندان زمین زمین درگیر شده با این یخبندان بل. یه جاش شن... چیز نیستش که عصر یخبندان کل زمین هست ولی بعضی جا روش یخچال دارید و در همه زمین شما کاهش شما دارید ولی اصولا مرکز زمین و هر چی به اون نزدیک‌تر باشه گرم دیگه شما جنیم کره شمالی باشی بیا به سمت جنوب چه نیم کره جنوبی باشون بیا به سمت شمال خب طلاتیران که تن نیم کره نبوده که اینا سرشون بشه بیان به سمت بالاتر مثلا تو خلیج فارس باشن خلیج فارس هم نیم کره جنوبی اینا بیان به سمت شمال اینا به سمت جنوب میرن به سمت آفتاب میرن دروح. به سمت گرما میرن اتفاقی هم افتاده همین بود اینا سر زمین شمالی بودن با نام اولیه ایران ویش یخ زدن و سرشون شده برام پایین خاطرات بعدیشون از بالا بعدشون میومده و اینم برام فروت مثل که من برم یه چای کوتک بخورم قبلا قبلمون جو دوست هاشم اونجا, اونجا کوتک خور از منم جو برام میاد این مثل خیلی ساده است و به جنوب اومدنشم ساده است بعد قضیه بعدی که حالا ایران ویش در متون متأخرتر اینقدر گسترده شده اینم هم شاهد دارم پاسخ خوب. شما ببینید در جاهای دیگه هم همین صورت است در ایران هم به همین صورت است ما نام‌های خاطره‌آمیزمون منتقل می‌کردیم همین 100 سال پیش 200 سال پیش انگلیس‌ها این کارو می‌کردن میرافن اینکه حالا انسان به روسیه شده دیگه نمی‌ذاره انگلند می‌ذاره نیو انگلند می‌دونید انگلستان جدید بله برای بله آمریکای اون 13 تا ایالت بالا می‌گفته نیو اومدن, اومدن شهر ساختن بس اسم منفیس نیو منفیس هم نیست بله. وستر منفیس هم نیست اصلا شهر فیلادلفیا مگر از شهرهای روم قدیم نبود تو همین سوریه قدیم نبود اومدن مشابه شهر... ساز ایران وستون همین طور بوده ولان رود جاجود از روز چاچه ما موارد فراوان داریم. حالان حالان حتی اردن دو سرزمین در یک ج... دو تا نام در یک سرزمین داریم. این یعنی ما باخته رقابت داریم. باخته رشته بالخاست داریم. ما هندیجان و اندیمش کو اینه که هند قبلشون رو، اندیا قبلشون رو، هندوسانام اندیایی هستند ما داریم. یعنی ما حتی بر پارتامین هست. یعنی آپادانا حتی کاخ داریم آپادانا یا شوشتری آپادانا این شهر در بته خرچم شید داریم. یعنی اینها دلیل میشه که مثلا ما بگیم بس آپادانا یکی از این دو تا است نه شوشه نیستش نه این هر دوشون هستن. متتحییلشون متقدمه این از این مسئله ولی ببینید ایران ویچ اولیه بوده که بعد پادشاهان هاان خوننی یا اون اسمال خونی رس راحت ترش تشکیل دارن یعنی از اون سرزن اولیننا فرار کردم اونن بهجنون پچه پادشاهی تشکیل دارن کیووم مرسستا فریدون که الان هم از بحث فریدون بشم شما و سینه اینا اون کشور اولیه جامعه رو می دارن بر این کشورتی که پاره میشه دوباره ایرانی میشه و ایران ویچی میدونید باز نامش برگشته و دو تا همسایم حالا داره یعنی این سرزمین اولیه پاره شده خون... به خونی راست جنوب‌ترمونن بر اون دوره پاره شده به اسم اولیه ما اینو داریم و جاهای دیگه هم داشتیم یعنی ما یک قومی حرکت میکرده بر سرزمین دوم نام ج... باستانیشو میگذاشته این چیز عجیبی نیست خیلی انجام می‌دادن این یک بحثی بود به نظر من زیادم جای چالش برانگیز نیست یعنی این ایران وایچ مثلا من گفتم که این عرب چه کوه دماوند هم تو ایران وایچ هست هم نیست تو ایران وجه اولیه نیست ولی ای تو ایران وجهی که باها تصور کردن هست ما داریم میگه یعنی یه تصور کردن یه یعنی ببین... سیاسی تشکیل شد اونم در بدر ایران اصلا گسترشش خواستن برن دلشون خواسته دوران ساسانی ما از این کارا زیاد داریم ببینید اونم بیان گفتن ری که ری دیگه ری راگای چیزیو گفتن آذربایجان است متن پهلوی است راقا راگای دقیقاً ای که... ما این, این دیدیم که ری شرت ندارد، مگر به طریقی که این سرزمین ماد بوده ماد دو شقه شده ازبکستان و ماد سرجاش مونده ماد او... کوچک اولیه ری در ازبکستان است منظورش هم ماد, ماد کهنه این اینجوریه شهرهای ماد خورده به همین دلیل اونها جزو شهرهای ازبکستان بعد شاید به همین دلیلم, دلیلم هستش که این اندیشمندان اسلامی تقریبا همهشون. میگن زادش مولازربایجان است در ساعتی که درست میگن مال ماد خرد ماد خ... م... این ماد خرد هم ازبکستان ولی نه آذربایجانی ما من امروز میشستم این ری امروزیه این این داستان هست من میخوام از این بحثا دیگه خارج بشم بیام دو سه دقیقه این تا وقت داشته باشم چرا وقت دارم بله همین دو سه دقیقه بیشتر وقت ندارم میام فقط اول فریدون رو بگم و دیگه صحبت نکنم ببین حتی بل. من قبلش فقط برای محکم کاری صحبت های خودم الان حتی یه مدل زهاگ در مصرم پیدا کردم مدل زها دقیقاً از دودمان نهم فرعانه مصر که امروز با سانچسی نتونسین نتونسی اسمشو در بیاره قرار اسناد یونانی دارن یک نمونه اسمم مونده اسمش هم یونانی مونده آکتوسیس آخ سو اس ببشت یکی از فرمانروها نوشته ترسناک تا این فرمان روايه زمانه خود ستمگری و بر مصریان دیوانه شدن وی و مرگ توسط یک تمساح تمساح خوردش میبینید یعنی این مان... فرمانروا چه قیم تمساح خورده یعنی حتی اینو دارن ولی این رو باستان شناس انبوزی انسان و فهمان روای پذیرفتش ما از دیدن یک فهمان ظالم در یه دوره پیش دادی یا نباید به هم بریزیم که بگیم اینو کنیم حالا میخوام دو دیگه دو دراج فیدون صحبت کنم که بگم چرا ببینید فیدون پسر سر آتبین که بد شد آبتین ای که این آقا کرده از میان برداشتن حکومت اشتراک دارایی ها به دوران زهاک. زح... زه ها کشتا که دارای یعنی هینه که بوده دقیقا این بحث و تودهی ها میکردن حتی در شروعی هم میکردن که میگفتن این مدلی که گیومات بعد پیاده کرد مودل بیوراس بوده مدل زهاش بود دقیقاً همون کاری که داروش بعدم چیز کرد و داروش هم میگه دیگه من اموال مردم رو در جای خودشون گفت مردم در جای خورد نشاندار بله یه کتابی هم اون موقع چند تا از این دایناسور های حکومت شروع شد اومدم از ایران هم چیزایی هم دقیقاً لبشن. همین متن کشیدم بیرون اینا ز بودن اینا رو میشناختم یکیش این کار بوده کای باش ندارم یه کار به زمینی هست. یکی گستره کردن مناطق زیر نفوذش خیلی قلمروش افتاد بالا و تقسیم و میان فرزندان این اتفاقم افتاده حالا اون دفعه منم قبلا صحبت کردم، کلم به سازنش این جلسه ندارم ولی اون کارشو کار دارم. ببینید من منابشم آوردم. گفتم که این آقا اومده قلمروش تقسیم کرده. این سنت تقسیم قلمرو میان سپسر یا تلاش برای انجام آن یک سنت هندو اروپاییه. چرا؟ توی سکه ها هست تارگیتاوس کتاب 4 حرو... بند هروودوت بند 56 این آقا میاد قلمروش تقسیم دقیقاً اصلا تو بیانی پادشاهان قدیمی رسم بوده که وقتی گی... هندورپایی بله یه سرزمینی که بوزو گسترده میشه معمولاً اه... نه. مردمان قله هندورپایی ندارید همون دیگه میگم معمون بنده من اروپایی هستش یه سرزمین وقتی گسترده میشه معمولا پادشاه به دو تا یا سه تا فزنش تقسیم میکنه ستاس. دقیقاً سه تا است یه سنت سس تو پادشاه عباسی هارون میخواست اتفاقاً همین کار بکنه بین امین و معمون دو تا تقسیم بکنه ولی خب در دستگاه خلافت عباسی معمون یه سری ایرانی های بودن مثل فضل ابن سهل اینا خب اومدن حکومت امین روی بغداد رو در واقع نابود کردن ولی هدف هارون مورخین معتقدن که میخواست اصلا یه چه مدلی بکنه نه سه تا ولی دوتا. به این دو تا, تا فرزندش تقسیم بکنه یه دو تا کشوار بشه. دوباره بین فرانکا شاللمنی که گفتم دیگه نسبت بزره، جیمز کوریک، اول وسوی اولیه. و پارسیان پارسیان هنوز حکومنش نشکن شدند. دو دمان حکومنش. این چیزی هم کنه ما این بروز می‌دونیم که از روی کتیبه‌های کوروش داریش و چیزهایی که امروز بروز داریم و نوشته‌های دغدغه لوح آریا رم نه و ارشام چون اینا دو تا لوح میگن که ما می‌رویم به حکومنش. بله. دیگه دو تا بسره. چرا دو تا پسرن چون پسر سوم اوروکو قبل از تقسیم بلبه تقسیم به اسارت آشوریه رفته یعنی آقا قطعاً دق... می‌خواستم این سنن فریدون و چیزایی که میشناخته فریدون بوده قبلش دیگه مملکتش تقسیم بر سه کنه سه تا باید دو باید. تا دو تقسیم دو کرد و حالا می‌خوام بچن برسم برسیم آخرش که اون حرکت فریدون هم اسطوره‌ای نیست که ما بخوام ازش داستان سرایی کنیم یه حرکت دقیقاً زمینیه. زمینی و تاریخی است بله خیلی متشکریم فقط توی متون در واقع ادیان هم هست که حضرت نوح هم بعد از اینکه بعد از مرگ خودش فرزند خود این سام و هامو و یکی از اون من برام مشکل بله یافت بهتر اصلاح کنم که چیش پایش تقسیم میکنه. بله نه حقم جناب آقای ایران مه ما وقت زیادی نداریم حدود دوازده دقیقه یازده دقیقه شما فرصت دارید و وایس خودتون رو ادامه بدید فکر کنم در مورد مهریه اشتم می‌خواین صحبت بکنین که تا اونجا که میدونم اون برداشتی که شما در مورد سند مهریه دارید رو شما ارائه بدید خیلی متشکرم خواهش می‌کنم من فقط اینجا خوب شد کتاب آقای فیروزی هست نیاکن گم شده صفحه 63 بله می‌بینید میگن که یه ایرانویجی بوده از وقتی که جمشید به قول دوستان با تفسیر دوستان میاد پایین این نام ایرانویج به پایینم گسترش پیدا میکنه یعنی قبلی ها کجا بودن تو همون ایرانویج شمال بودن. و بودن تحمورس و اوشنگ و سیامک و کیومرث اونجا بودن خب با تفسیری که دوستان میگن صفحه 63 کتاب آی فیروزی قلمرو و محدوده پراکندگی نیاکان ایرانیان و فرهنگ آنها در زمان فرمانروایی تهمورس که مانند دو حکومت قبلی حول دریاچه مرکزی فلات شکل گرفته است. است. حالا اینو داشته باشیم که الان میبینیم که تیمورسینا هم باز همین پایین بودن. استاد داره میگه طب سند داره میگه و همه هم نوشته. این درسته. صفحه 63 کتابش درسته. درسته. من تا بعد باز دارن میگن که تا قبل جمشید همه اون بالا بودن. اینو داشته باشین حالا بعد نه من اینو ق... رد میکنم این حرف نظره. کتابش شما. نه, نه نه اینو قبول دارم که اینجوری اومد این خودو سرار داشتن ولی اون آمدن به جنوب رو میخوام صحبت کنم. این نیست. این قبل رسه. از این صورت گرفته این اصلا قضیه با این فرق داره نیمه شمالی کشور رو تخلیه کردن نه اکی. کل یعنی مملکت حوزه سیاسیش هم وسعد فلات بشه رشته... هم شمال, نه شمال نه بوده؟ ش... اونجا بوده فلاتی... فلات وسعد فلات شما میگین تا همش نری بوده پایین نه, ته... نه نه نه من میگم حوزه جلسه قبلش هم زمان بده. زمان بده از کی یک آدمی رو بگید آدم بگم؟ یکی رو بگیم نه جمشید جم... اون نیمه شمال شرقی تحمورست که قبل از جمشیده که کاری ندارم میگم نیمه شمال شرقی کشفش تو شده اون فراره به جنوب شده نه همه این مملکتش تحمورست شما داریم میگین زیر البرز بوده اینجا بوده در گشتام هست تموم شده را... هست کاری ندارم اینجا رو خالی کردن اینجا رو خالی کردن کی خالی کردن؟ به آجا داستان خیلی خوب بریم دنبال در... ادامه میدیم حالا حالا ادامه در... در... حالا بس داریم حالا من اینو در یک جلسه قبلی هم گفتم گفتم, گفتم. یک بخشی از مملکت رو کشور آره سرمادیده و گفتم رد فرضی سیبریای ایرانیان فقط زمان میخواد خواد ما بله. بزنین عزیز چیزا زیاد میزنه حتی من اینو فهمیدم که حتی در جمعیه متون کشوری که تشکیل شده چرا میگین جمع کردن آوادن سغد بعد جمع کردن آوادن اون که مهاجرت اولیه‌اش اون فرگر 1 کم با فرگر دوم خیلی فرق داره اصلا جمشیدو دارین میگی جمشید بعد فرگر دومه بحث از ایران وش فرار کردن به صغد و فلان این فرگر اول یه داستان دیگه است قبل از کی اومد داره جمشید رو میگه قبل از ام... کی مرسه فرگر یکم قبل از کی مرسه عجب دوست فرگر دوم جمشیده خونس. کاملا متفاوته ولی من اصلا کلیت متونم بررسی کنید این حالتش اوریب مملکت به سمت شمال شرق فلاته اینا خوره خوره میان به سمت غرب خورد خورده میان به سمت غرب سرزمینی 16 در 1 قربی ترین نقطه شونه ولی همه سرزمین 90 درصد در شرق هستند تا دا ذره میون وسط فرسا هم همه دانشمندایی که اومدن ایران و... محل اصلی هند و رو بیان کردن همشون بالای مرز 39 درجه است اصلا در خلا از شرق دارم همه تمام به حتی زبان شناسی این هیچ ربطی نمی من کردم سند همه میگن برای من زما... نیاری سند... این سند ایرانی برام بخون این همه میاره خودشو که نیاوردن که همه میگن همه... ما رو دبستان ما از شمال شرق میام سند گوتیک ما رو دبستانه میگن فرگز سند سنتیمون دبستان سند سفخ نخوسین سرزمین و کشور نیک که من بود پس آنگاه اهریما بیامد دقیقا داره داستان فرگیرید دوم داری توش تو داستان متفاوت این سر جای خودش. فرق... فرق... ب... ببینید اصلا آقای ایران ما ما اصلا برای وندیداد اصلا ما پنج قسمت ما اصلا جدا برای... باید, باشد. باید باشد. اصلا بخونیم مثلا. به این دو داستان یک داستان نمیشه. من فقط موندم فرگد دوم چجوری میخوام بخونم؟ حالا مغلوب جمع چجوری میخوام بخونم؟ اشکال است. ما خدا رو به وندیداد رسیدیم. مهری اشکال همه پاسخ ببینید من از اینجا آغاز میکنم که بله. ایزد پیمانه با خورشید ارتباط نزدیکی داره فرد اینو دقت کنید در پیشا پیش او حرکت میکنه. مهریاش بند سیزده پس مهر با خورشید ارتباط داره اما دو چیزن. مهر پیشا پیش خورشید حرکت میکنه. این خیلی نکته مهمیه که بعد تو بس متوجه میشه ببینید مهریاش رو خوندن در چند نشسته پیش. بله. که من گفتم پاسخ اینو میدم. شما اگه یک نوشته در وصف کوه فوجیاما بیارین چون این دوستان و او همه ای که میگن و من میدونم و 95 درصد محقق نیم اوزه چون ذهن کوچ دارن اون وصف کوه فوجیاما در ایران در شمال سوق برای شما تعریف خواهم شد. اصلا در اوستانی گسترش حالا اشکال نداره. ما که الان در بس سه دفعه عبورده. خب سه دفعه شو... خیلی خب س... بعد سه دفعه نرسیدیم دیگه. مگه ما فعلو میتونیم تا چیز کنیم نه نمیتونیم. فعلو نمیتونیم عوض کنیم. بعد سه بار گسارش به ایران نه همش چیزی هرگز همش پس دکتر. الان وقت الان حتما شما اگه یه نقاشی از رام راندم نشون بدین او تصویر سبزیای پشتو رو ببینن میگن این شمال ده یعنی میدونی ذهن طوریه که اینا هر چی رو که بخونن این اون کوچو شمال سرخ جلو چشمشون ذهن یعنی گیر کرده تو کیاردو آره نامنه. گیر کرده داشت گیر کرده آی کریمی مهریهش خوندن اون نشست یادتونه بله دقیقه و تو یک لحظه من دیدم آیه فیروزی خم شدن به طرف این بلنگوی جلوشون و گفتن داره ایرانویج رو میگه ها بله. در صورت که تو سراسر مهریشت واژ ایرانوژ وجود نداره. 146 بند داره حتی یک بار واژ ایرانوژ نیومده. نیامد. تصور دوستان این بوده که دارن ایرا ایران ایرانوژو میگه و آی فیروزی تاکیداً اومدن جلو و گفتن ایرانوژو میگه ها. خب حالا اینو داشته باشین تا ببینیم ایرانوژو میگه ها یا جای دیگر میگه. این دیگه آقا شما که فضایی که در واقع مهریش داره, مهریش داره اصلا میخونه ممکنه دیگه است اینجا سراغش متفاوت. اشکالی نداره. اشکالی نداره زمان هم شما تعیین کنید من قبول دارم گرم و با آرانزا و اینها بسیار عالی اصلا سرد نیست بسیار عالی حتی ایرانوه چی که توصیف کنه توش ایرانوه چیست به حال از باز همون دیدین ده. که تاهمور از کجا بودو اینا باز همون داستانه دیگه یعنی باز میگم یکی دو تا ایرانویج داریم این ایرانویج بعدی یعنی دائما دارن توضیحش میدن یک نظریه رو هی با توضیح میدن شاهد براش وجود داره وقتی میگه البرز چرا اینجا اونجا نداره میگن خب ایران ایرانویج اومده اینجا حالا بهرام نمیگم بعدن بعدا چطوری قبل جمشید تا از رسمت بومیش از منطقه بومیش بتا تا کرانه های اون ور نرفت این ببین گفتن که راهطولیه که قبل از جمشید بوده که بابا خب نه من بس, بس من بس اونو بس خایم کرد, کرد. کرد. جمشید این منافاتی نداره که تحمل بس به جنوب‌تر اومده اشکالی نداره ببینید ما همین من عرض کردم که یک سرمایه من تجریشاونم هم دوستان همین شبیه این کارا رو میکنن یعنی مثلا یه مقاله ژنتیکیه فیروزی داره پایینش نوشته که این بحث ژنتیکی رو اسناد تاریخی ایران هم همین رو میگه میدونید تو ذهنشون فرگرد یکم وندیداده توری به شنونده عام، خواننده آم میگن که اونجا هم همینا رو که من دارم میگم نوشتن. ببین این من برات توضیح بدن این الان اشتباه از اینجا شروع شده که ما دو تا فرگد و یک داستان تصور میکنیم بنده تصور نمیکنم من اینو دو تا داستان تصور میکنم یک داستان قدیمیتر پیش از تشکیل حکومت کیومرث. یه داستان متعب. بعدی در دوره جنس پس،, پس اجازه بدین برسیم به فکر کردن با این ادارهش این از اینجاست که چرا میگن که پس چرا تحمورس هم در مرکز فلات ایران با... قلمرو قلم داده قلمرو داده بله با... پس اون تق... اون اتفاقی واسه جمشید افتاده یک اتفاق محلی است در قلمرو شمال شرقیش هیچ‌راتی به قلم جنوبیش نداره انگار شما بیت تو... در آذربایجان خلخار سرما بشه مردم بلند کوی بیایید تهران این اتفاق افتاده برفت. و ورتونم در اصفهان بزنید تصورتون از اون اینه من دقیقا این بحث آره همین تصوری مهریش دهمین یشت اوستای از لحاظ مضمون پس از فروردین یشت کوانترین بخش خوب برخی پژوهشگران یا تقریبا بیشتر پژوهشگران میگن که اشاره های جغرافیایی موجود در مهریش نشان میده که محل سرایشش سرزمین های جنوبی آسیای میانو و شمال افغانستان پیرامون رود آمودریا بوده بیشتر محققین من هم فکر مهم درست میگن بل. محل سرایشش باید تقریبا همینجا ها باش ببینیم مثل شاهنامه دیگه خود شاهنامه مثلا جایی که سروده شده اسنادی که د... میدونیم کجا سروده شده اسناد کوهند رو کوهند. داره میگه بل. داره از یه خاطره های قدیمی میگه اما محل سرایشش خب توسه منم فکر میکنم محل سوراش همطور که جمعی محققین تقبا همین رو میگن هم اینجا باید باشه محل سرایشش دقت کنید. حالا مهریاش داره بند سیزدهش میگه که اوست نخستین ایزد مینوی که پیش از خورشید نیستی ناپذیر ببینید پس پیشاپش خورشید میاد دیگه پیش از خورشید نیستی ناپذیر رو تیز اسب از فراز کوه کوهلبرز برایت پس سند کواهنتر آدمایی که سند کواهنتر نوشته بودن و سرایش در اونجا انجام شده کجا رو دارن میبینن؟ البرزو دارن میبینه اوس نخستین کسی که با زیور افسار زرین و ازین بسته از آن فرازگاه زیبا بردمیده از آنجاست که آن بسیار توانا همه خانمانهای ایرانی را مینه گرد. یعنی وقتی مهر بر فراز البرز داره خانمانهای ایرانی را مینه گرد. حالا میخوایم ببینیم خانمان ایرانی از فراز البرز کلا طرفو نگاه کنی میبینیش اینو بگیم که مهری یاداور یک عهد کهنه اما باز پژوهشگران همه تقریبا نوشتن که به روشنی در آن اصطلاحات زرتشتی هم دیده می شود داره خاطره خیلی کوهنی رو میگه از جمشید و اونجاها داره میگه خیلی کوهنه اما اصطلاحات زرتشتی هم توش داخل شده یادتون یادتون اون الهاقاتی که گفتم آی زرتش... روزش چیز... بله. الهاقات... روزشو داره میگه بله الهاقات داره الحاقات داره من اون الحاقات اصلا گذشته نمیگه داره میگه دانشمند هلندی میگه که کلیه مطالب مهریش رو که تحلیل کرده آثار کوهن و تجدد زرتشتی رو تو آثارش نشون داده کتابی داره که اینا رو نشونده کجاش به صاحب الهاقات زرتشتیه کجا اون کوهن است که بر فراز البورز واسطه داره میگه کجا الهاقاتیه که داره جغرافیای سرائش رو میگه سغد و آمودریا میگه. رو میگه ببنید؟ ببنید؟ عرض بنده توجه کنید و... عرض بنده توجه کنید دیگه وقتی من... که در بند سیزده داره میگه که بر فراز اللبز واسطه داره خاانمان های ایرانی رو نگاه میکنه این اون متن کههن است وقتی که این بعد از سرماست فلا کرمه این بعد از جمعشیده حالا بذاریم ببینیم خاانمان های ایرانی از نظر مهریشت که خیلی هم کههنه کجاست دیگه نه. یعنی شما میگین که این من دارم میگم دو قسمته یه قسمت مهریشت کههنه یک جا دوباره سرایش شده در آممو نمیشه که قصل پیله نشده که این حال بند چه خوندن رو شماتهدیدش کرد الان میخونیم دیگه آن جایی که شهریاران دلاور سپاهی آراسته فراهم کنند آن جایی که برای چهارپایان ساسنی رو حالا مشخص نیست چیه کوستانهای بلند و های بسیار آماده شده است آن جایی که دریاهای جرف و پهناور گسترده شده است دریاهای جرف و پهناور, پهناور داره اونجا آن جایی که رودهای فراخ کشتی رو دیدین کجا رود کشتی رو داشت کنگیس کنار اون دره ای بود که اون رود کشتی رو داشت و با امپور و خورشان به کوه سنگ خارا بر میخورن داریم دونه دونه میگیم می‌بینیم جلو خب. و میشه تابند این, این رودها میشه تا بند به سوی مرو و هرات و سغد و خوارس این جغرافی متأخر است خب. یعنی کسی که در کنار آمودرییاس داره میسرای به قول تیله الحاقات زرتشتی داره دیگه حالا داره اون جغرافی ارتاف خودش هم داره میگه یک فلا شما نام ایرانوج دیدین تا اینکه ندوس خیلی خوب. اصلا بود و نابورش مطرح آن طوانا... آنجا آن... منظورش کجاست پس خب آنجا کجاست شما فکر می‌کنی حالا من الان بهت میگم الان می‌خوام جوشو بگم میگه من آن مهره چرا الان وقت گرفتم صحبت مهره مهره کنم آن مهر توانا نگران کشورهای حالا اینا تلفظ‌های داره دیگه ارزهی سوهی فرد دهش وید دهش وورو برستی و وورو جرشتی. اون شش کشور اطراف خونی رس آن مهر نگران این است و نگران این کشور خونی رس درخشان است یعنی جایی که داره می‌بینه قضیه متاخر این نظر شما سنزده میبینیم این متقدمه این فلات نظر همه. من متقدمه این نه اصلا همیتونیم حالا و این خورمه شما میتونیم برین این لرزش شما شده. میتونیم برین پجورشگره ببینید کدوم بنداشو متاخر کدام کدومانو متقدمه چرا اسم یه دون جایی که شما میگید نیوورد همش واسه شما میگه آقا دیگه من مرو رو کردیم حالا ما رو میخوریم شما گوش کنید من که چیزی نگفتم نه هنوز نگفتم نه. من که هنوز نگفتم شما به ایران که آقا میتونیم واسط واس ایران آه... مر اخر خب من میگم ببخشین شهر مرو و هرات و سغد و خوارز آقا دیگه چجوری کجا نویسنده کنار بوده که این کربن چهاره داره که این بن قدیمی ای بن یارو چسته قلمشو گذاشته با تشخیص شفته. بدی با تشخیص این بدی از از گرمه من... این با اون سرد و لرزشون در چند وقت دارم اینو خب من دیگه نشان... صحبت نمی‌کنم پس بگی نی... اصلاً ای... نه. هیچ... مهدیش هیچ. این دساس میای باش پس مهدیش... مهدیش هست دیگه دوباره میای باش پس به با امیده... خدا اون رو مطرح باید ادامه من دارم متن محریاش رو میخونم تا بعد توضیح بدم که استنباط من و اسناد من دقیقا بل چیه بله اسناد ایشون اینه که اونجا ز... شما, شما به استعلام ای ایران وجا دو... آقا ماشو بیا 100 تا سند مینسین زیرش مهمه میگیم که ایران همون جایی که شما میگی منتا اجازه بده من رو بخونم کره شمالی باشه وقتی متن متأخر از نسبت به گذاشته مشکلی نداره شما دلیل برداشت شخصی مشکلتون بگی شما حتی نذاشتین من برسم سندامو بگم درباره بله مشی آقا جان شما در مورد بگو خوشم نمیاد ایران وجای دیگه باشه اما نز بز بدقیکه سنداشونو بخونید دیگه نه شما چرا بخونید نمیذارید آب و هوا آید دکتر مهدی آب و هوا من میخواستم بحث ستاره شناسی مطرح کنم گور پدر آب و هوا آقا آب و هوا رو من تو بخش یخبندان میگم که تا ببینید چه ذهنیتی غلطی درباره یخبندان دارید من می‌خواستم ستاره شناسی بخونم وای دکتر ستاره شناسی نذاشتن بله برنامه آینده نشاسته آینده شما شروع کنید. برداشت خودتون از مهریاش دو رو میگین دوستانم خیلی حلا ناراحت نشید بالاخره ببینید نشون تو بعضی از شما شمال و صعد هستم بذاریم دور پدر و سرگذشت دیگه بزارش بزارش بزارش بس. بزارش بس. بزارش <تصفح> اجازه میدین خب میگید ببینید پیشم من همیشه نمی اومدم واسه طرفشون ایشون گفتن آقا شما بیایید اشکال نداره اومد اشکالی اشکالی اشکال نداره اگه 100 تا نشستم بیان بعد اخرت سند ستاره شناسی مو خواهم خون اینو داشته باشم بااب داریم بشنوید کدامونه ما هم خب مشکلن، من... مشکلن. کنال، کنال، جمعه من این بود دیگه ستاره شناسی که آبا بگین نه آب و هوا که بین یک سند متقدم و متأخر نویسنده اولی بهتر میفهمیده که سرزمینی کجا بوده شما من نظر من شخصی تو داریم میگی عزیز من شما میگی هر من میخونم میگی اینجا گرم بوده بعد میخونم اینجا سرد بوده نظر همین شخصی میگی تا ایران وجد بره شما رو جنوب ببینید همین بندهش با اینکه اومده این همه تغییرات داده ببینید ایران وجد کجا برده هر جا گفتم من قبول دارم بندهش هر جا گفته من دارم مشکلی خب دیگه این دیگه بعد خب. به درس جغرافیاش آقا جان هستش دیگه صحبتش شد, شد دیگه سب شد دیگه با اندیش هر جوری که گفته من همونجا رو قبول دارم بله، مش... مشکل وجود ندارد. بندایش نمیره، استاد مهریاش لعنتی. که جلساتی پیش چقدر رو مسخره کردن وقت علکی بوده است. کردیم. اون جای دومو برداد گفته نمیفهمیده حالا به بوده اتفاقا ما بندایش. پله‌ای بوده بیخوده وندیداد اصلیه. شده. جای بسیار خوبی داره. جای داره. پس نشسته بعد من مهریاش فقط اگه سند شناسی درباره دارم بله. آب و هوا بگن که دارن وقتو تلف من تیریش دارم. ما بهرام داریم. حالا خیلی بزرگتره. داریم. مشکلی نداره. بس خدمتش شما گرامی از کنیم که قسمت 28ام رو پایان هست شما رو تا آغاز قسمت 29 هم به خداوند متعال می‌رسونیم و در قسمت 29 هم سند ستاره شناختی مهریهش رو در خدمت دوستان خواهیم بود. خدا نگه.